أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا w ALLAHU ALA KULI SHIĘIN KADYR AY AHLI AYMIAN CZYST CHOMA RAH WOKTAY KIE BE SHOMA GFTE SHOWD BEYRON AYET DER RAHI KHIDA GYRAN SHUDE MMYL MIKONED may BESOI y ZEMIEN AYA پس نیست متاع زندگانی دنیا در مقابل آخرت مگر اندکی. اگر بیرون نیائه یعنی بجها در راه خداون نبراید. عذاب می‌دهد خدا شما را عذابی در ناک و به دلم آرد غیر از شما دیگر قوم را و هیچ زیان نرساند خدا را و خدا بر همه چیز تواناست بیا خرز بیا مسلمان بپا خرز عدو در کمی نزی بهری خداخر بیا خرز بیا مسلمان بپا خرز عدو در کمی ناز بهری خداخر دشمنت درنگو تو در خو دادا افلات دشمنه زرنگوت تو در خواب غفلت بیاخذ بیاخذ مسلمان با پا خز عدو در کمی ناس بهری خدا خز دشمنه زرنگوت زی خابی دشمنت دشمن تو و در خابی قفلا زی خابی گیرانه چون موجی دریا خس در کمین از زی خدا خیر زی خابی گیرانه چون موجی دریا خس عدو در کمین از بهری خدا خیر دریا خس خس مسلمان با پاخز عدو در کمی ناس بهری خداخس دشمنان زرنگوت در خواب غفلت دشمنان زرنگوت در خواب غفلت بیا خز بیا مسلمان با پاخز در کمی ناس بهری خداخس دشمنان زلن قوت در خواب غفلت دشمنان زلن قوت در غفلت فتنه زیار رسول اومد بر حریمت از برای محو شدن بلاخه فتن ها زیار رسول اومد حریمت از برای محو شدن بلاخه بیا خز بیا خز مسلمان با با خز عدو در کمیناس بحری خدا خس دشمنات زرنگو تو در خواب غفلت دشمنه زرنگو تو در غفلت بیا بیا مسلمان با پا عدو در کمی ناس بهری خدا خز دشمنه زرنگو تو در خواب غفلت بیاخذ, بیاخذ, دشمن آزارنده تو در خواب غفلت یهودو ناصرات دشمنان دینت بهری این عدامی ای این جبرو ترسخت یهودون نصرات دشمنان دینت بهری این عدامی ای این جبرو ترسخت بیا خیز بیا مسلمان بپا خیز عدو در کمیناسی بهری خداخه. دشمنت زرق و در خواب غفلت دشمنت زرق گود در خواب غفلت بیا خیز بیا مسلمان بپا خیز عدو در کمینه زیبهری خدا خیز دشمنت زرق و در خواب غفلت دشمن ا تو در خواب غفلا هر سو شب تار است از فشار اعدا همچو نیاکان در شبیه دخه هر سو شب تار است از فشار اعدا همچو نیاکان در شبیه دخه دوخ بیا خیز بیا مسلمان با پا خز عدو در کمی ناس بهری خدا دشمن در تو در خواب غفلت دشمن در تو در خواب غفلت بیا خز بیا مسلمان با پا خز عدو در کمی بهری خدا دشمنه زرنگو تو در خواب غفلت دشمنه زرنگو تو در خواب غفلت بیا جو هری تو باعزمی متینت چون سرداری عالم از خاکی بود حخی بیا جو هری تو باعزمی متینت چون سرداری عالم از خاکی بود حخی بیا خیز بیا خیز مسلمان بپا خیز عدو در کمی ازی بهری خدا خی دشمنان زرنگو تو در خواب غفلت دشمنان زرنگو تو در خواب غفلت بیا خیز بیا خیز مسلمان با پا خیز عدو در کمین بهری خدا خیز دشمنان زرنگو تو در خواب غفلت دشمنان زرنگو خواب غفلت بیا خیز بیا خیز مسلمان بپا خیز عدو در کمینا